ارز سلام و ادب و احترام خدمت دوستان گرامی و همراهان عزیز در برنامه قصه‌های شاهنامه حکیم ابوالقاسم فردوسی با ادامه داستان فرزندان فریدون در خدمتتون هستم در آخرین برنامه به اینجا رسیدیم که سلموتور نوجوان مردانه و در کمال بیرحمی برادرشون ایرج پاک نژاد و خوشقلب رو به قتل رسوندن و حالا ادامه این داستان رو که زاده شدن منو چهره با هم پیم بعد از قتل نوجوان مردانه و نامردانه و بیرحمانه ایراج به دست دو برادر سنگ دلش فریدون متوجه شد که ماها فرید همسر ایراج بارداره و پس از طی دوران بارداری دختری رو به دنیا آورد بسیار زیبا و شیرین دختر ایرج و ماها فرید در کنار فریدون و در کاخ سلطنتی ایران رشد کرد و بزرگ شد و به سن جوانی رسید و در اون سن با یکی از پهلوانان سپاه ایران به اسم پشنگ ازدواج کرد بعد مدتی که از ازدواج این دو گذشت دو پسر به دنیا اومد از ازدواج اونها که نام یکی از اونها رو منوچهر گذاشتند فریدون با دیدن منوچهر به یاد ایرج از دست رفتش افتاد و لحظات اینش انتقام در وجودش شعلورتر می فریدون از همون دوران کودکی به منوچهر تیراندازی سوارکاری فنون نبرد و اونچه که لازمه یک پهلوان یک جنگجو و یک پادشاه بود رو به منوچهر آموخت به امید اینکه یک روزی منوچهر انتقام خون پدر بزرگش ایرج رو بگیره همینطور که منوچهر بزرگ می شود آروم آروم شهرت منوچهر در بین مردم ایران زمین پیچید و همه خبر از این میدادند که پهلوانی دلیر و نیرومند از طایفه و نژاد ایرج و فریدون به نام منوچهر به دنیا اومده و این خبر به گوش تور هم رسید. اونا با شنیدن این خبر سخت آشفته و نگران شدن میدونستند که پدرشون فریدون هیچ وقت فکره، انتقام خون ایرج رو از سرش بیرون نکرده و الان که نویی این چنین پهلوان و دلیل تربیت کرده حتما به فکر انتقام و خونخواهی میافته سالم مکار و چرب زبون بود و خودشو به طور رسوند و با هم مشورت کردند. تور گفت ای برادر حالا باید چیکار کنیم؟ سالم گفت ما باید پیکی رو به همراه یک سری هدایای بسیار گرانبها به سمت پدرمون بفرستیم و از اون تقاضای عفو بخشش کنیم. این بهترین کاریه که تو این موقعیت میشه انجام داد. با این کار هم از خشم و کینه پدر در امونیم هم منوچهر به قلمرویمون حله نمی‌کنه. تور پیشنهاد برادر مکارش را قبول کرد و بعد هر دو برادر دستور دادند به خزاندارهاشون که مقادیر زیادی طلا و جواهرات و پارچه های زربفت و گران قیمت از خزانه خارج کنند و اونها رو سوار بر فیلهای بزرگ کنند و به سرزمین ایران بفرستند ای که مخصوص سلم و تور با هدایای دو برادر وارد ایران شد و به سمت پایتخت ایران مقر حکومت فریدون حرکت کرد پیک وقتی به قصر فریدون رسید به رسم ادب زانو زد زمین رو بوسید و هدایا احترام کرد و رو به فریدون گفتش که ای پادشاه ایران زمین عمرتون همیشه جاویدان زندگیتون پربار و زیبا و سرزمینتون همیشه سبز و خرم باد من از جانب پسران شرمگین و خجالت زده و پشیمان شما سلم و طور به اینجا فرستاده شدم باید بدونین که تو این سالها اونا لحظه آرامش نداشتند و در فراغ از دست دادن برادرشون ماتم زده و غمگینند واقعا اونا از کرده خودشون پشیمونند و سزای بدی خودشون رو هم در این دنیا چشیدند اما شما که سرابا خیل و نیکی هستی و بزرگواریت آوازش در همه عالم پیچیده باید فرزندان خودت رو ببخشی و اونها رو عفت کنی و به اونها فرصت جبران بدی اگه اجازه بدی منوچهر با ما به سرزمین سلم و تور بیاد تا تاج و تخت پادشاهی اون سرزمین ها رو به اون تقدیم کنیم و سلم موتور تور که خدمت گذاری منوچه رو بکنند فریدون که بسیار باهو دانا بود با شنیدن سخنان این پیک پوز خنده تلخی زد و گفت پسرای من دو اهریمن زشت بد هستند و هر کاری بکنن اون با باطن سیاه و نفرت انگیزشون رو نمیتونن پنهون کنن اونا با بیشرمی و قصاوت و سنگدلی تموم برادرشون ایرج رو کشتند و جسدش رو برای من فرستادن. حالا چی شده که نگران حال نوی ایرج یعنی منوچر شدن از قول من به اونا بگو منوچهر، تنها برای یک دلیل ممکنه به سمت شما بیاد اون هم گرفتن انتقام خونه پدر بزرگشی بعد از گفتن این صحبت و پس فرستادن پیک فریدون و منوچهر دست به کار شدند و سپاهی عظیم آماده کردند فرمانده اون سپاه پسر کاوه آهنگر قارن مشهور به قارن رغزم زن بود و پهلوانهای شجاعی مثل شاپور و دیگران در اون سپاه خدمت میکردند بعد از اینکه پیک به سمت سلموتور برگشت و صحبتهای فریدون و گفت و اونها رو در جریان آماد سازی لشکر و وسعت و قدرت سپاه ایران کرد اون دو برادر با ترس و دل هوره به همچشم چشم دوختند و در فکر یک راه نجات از این محلکه بودند توربا نگرانی به سلم گفت فریدون خیلی خشمگینه فرصتی رو که سالها در انتظارش بوده با بزرگ شدن منوچهر به دست آورده حالا اون منوچهر رو راهنمایی میکنه و بعید میدونم ما بتونیم راه فراری پیدا کنیم چون اینجوری که شنیدم منوچهر هم قویه هم هوشو دورندیشیه بسیار زیادی داره و معلمی مثل فریدون داشته سلمم سرشو تکون داد و گفت با این اوزا فقط یه راه برامون باقی میمونه اونم اینه که به بهتره بهتر تو به قلم رو خودت بری و من هم از این طرف به قلم رو خودم میرم و به سرعت شروع به گردآوری سپاه میکنیم و خودمون رو آماده میکنیم برای جنگ با ایران به این ترتیب دو برادر در فاصله کوتاهی سپاه بزرگی رو تشکیل دادند با تجهیزات جنگی مفصل و فیلهای قدرتمند و خودشون رو برای لشکرکشی و مقابله با نیروهای ایران به رود جیهون رسوندند خب دوستان این داستان بسیار در شاهنامه داستان مفصل و طولانی است داستان جنگ منوچهر با تور و به قطر رسوندن تور و بعد از اون حمله به دژ آلانان که دژ پناهگاه سلم بود و منوچهر در اونجا موفق میشه سلم رو هم به هلاکت برسونه و کاری که میکنه اینه که سر هر دو برادر ناپاک و کار پدرش رو برای فریدون میفرسته داستان فریدون و پسرانش با انتقام خون ایرج بیگناه به پایان میرسه و اونچه که مهمه اینه که حتی زمانی که منو چهر سرهای سلم تور رو برای فریدون میفرسته و فریدونی که سالها منتظر این بود که انتقام خون پسرش ایرج رو بگیره چقدر از دیدن سر بریده دو پسر دیگش هر چند ناپاک و بدزیرت قلبش به درد و اون مهر پدری باز هم باعث نمیشه که اون از این مسئله و گرفته شدن انتقام خون ایرج خوشحال و راضی باشه پایان این داستان پایان سلطنت فریدون بر ایران و به تخت نشستن منوچهرشاه. و اتفاقاتی که پس از اون میفته که اگر ری باقی باشه در برنامه های بعدی و در های بعدی بخش از اون رو براتون تعریف میکنم تا برنامه دیگر و داستانی دیگر از شاهنامه حکیم ابوالقاسم فردوسی توسی همه شما رو به خداوند ایران می سپرن. روز روز روزگار بکن